بسم الله الرحمن الرحیم درس بیسونه هم المناده بحث مناده ما هو المنادا قاعده 162 میگه مناده چه هست؟ 163 کم هی احرف نده؟ حرف های نده چند تا میباشند؟ 164 کم نوعا المناده؟ مناده بر چند نوع هست؟ 165 ما هو حکم المناده المفرد؟ حکم مناده مفرد چه هست؟ 166 ما هو حكم المنادى المضاف والمشبه به حكم منادى المضاف والمشبه به مضاف تش 167 كيف يتوصل إلى النداء المقرون بالالف لام يا بال الف چطور رسيده مشي بالنداء بالندائي ك ان منادى چدار باله یعنی اگر تو خاصی یک چیزی رو ندا بزنی که علف داشت این چطوری چطوری نداش بزنی چطوری نداش بله خوب کم واجهن للمناد المضاف الی آیا المتكلم چند حالت داره منادایی که مضاف به آید متکلم است 169 متى يجوز حذف حرف النداء چه زمانی جایز است حذف حرف ندا 170 هل يجوز حذف المنادى آیا خود منادا حذفش جایز است 171 ما و يجوز في توابع المنادى در تابع منادا چه اعرابی جایز است 162 المنادى هو الاسم الظاهر المطلوب اقباله بحرف النداء نحو يا رجل میگه منادا اسمی ظاهری هست که توجه کردنش مطلوب هست طلب هست به وسیله حرف ندا پس اسم ظاهری هست که روی کردن اون توجه کردن اون چه به وسیله حرف ندا مطلوب هست مانند یارجل ای مرد ای بله كيف يقول يا مامي خاين الرجل بما تشكر كنات يقبال كنات فإذا حرف النداء ينوب منابى فعل النداء أو النداء المحظوف حثا لازما لكثرة الاستمال ودلالة حرف النداء عليه فإن الأصل في يا رجل مثلا أنادي رجلان ثم حذف الفعل للتخفيف وعوض منه بالحرف و تحسب العبارت جمله و یجعل المنادا مفعولا بهی للفعل المحذوفی وجوبا منصوبا اللفظا او محلا یه تبصر قشنگی رو توضیح میده میگه این حرف ندائی یا رجل یا نائب فعل ندائی هست که اون فعل به شکل لازمی حسف هست زیر زیاد استعمال شده زیاد کاربرد داشته و حرف ندائی هم برش دلالت میکنه پس اصل یا رجل مثلا به عنوان مثال چنین هست اون عادی رجولن اونادی فعل جهت تخفیف حذف شده و سر جاش حرف ندا اومده است به این خاطر این عبارت یا رجل یک جمله حساب میشه یک چه حساب میشه جمله در حال که اگر ما بگیم یا رجل بدون تقدیراتی که گفتیم این که جمله نیست اما از اون جایی که این یا حسن جانشین اونادی هست این عبارت یک جمله حساب میشه و منادا هم مفعول بهی فعل است که وجوباً حس شده و اون منادا و اون مفعول بهی یا لفظن یا محلن منصوب هست سد و شست و سه احرف ندا سبعتون حرف هایی که تو با شن سیلشون ندا میزنی هفته میوشند یا، آیا، حیا، ای، حمزه و آو و فعیده، ای و الحمزه القريب، حمزة و الحمزه برای منادای قریب نزدیک بکار میره وان. و لِالنُدبتِ و برای ندبه بکار میره. والباقي لِالمنادِ البعيد باقی هم برای منادای بعيد و کار میرند. و من ینزل من منزل منزلت هو و در منزله منادای بعيد است. کَالْنَائِم وَالْغَافِر. ماند شخصی که خابه یا, غا... یا در غفلت است، فی نادا بمال من ادوات ندا میگه این اینایی که در منزله بعید هستند مانند شخص خواب و غافل اینها هم به وسیله حرف های ندای بعید ندا زده می شوند اگر چه که نزدیک باشه یعنی یک شخص خواب اگر این چک یه متره تو خوابیده باشه ولی تو برای صدا زدنش از ادات بعید استفاده میکنید از ادات چه استفاده میکنی؟ بله یعنی از یا استفاده میکنی از چه استفاده میکنی؟ از ایو حمزه استفاده نمی چون ایو حمزه برای مناده قریب هستند و قد یوناد البعید به حرف نداء الموضوعی لقریب اذا کانا مستحظرن بالفیل میگه وگاهی نداء زده میشه شخص بعید با حرف ندایی که وضع شده است برای نزدیک برای نداه نزدیک یعنی برای اون عداتی که برای ندا کردن نزدیک و از شده گاه موقع تو برای بید ازش استفاده میکنی چه زمان از عدات نزدیک برایش استفاده میکنی زمانی که فعلا برات حضور داشته باش زمانی که برات چی داشته باشه مانند از سکان نعمان الاراک تیقنوه بأنكم في ربء قلبي خب اینجا داره سکنه نعمان و صدا میزنه که در واقع بعید هستند در واقع چه هستند بعید هستند اما در دلش حاضرند در دلش چه هستند بله اینجا میاد از عدات قریب براشون استفاده میکنه از حمزه استفاده میکنه ا سکان النعمان الاراک یقین ای سکان النعمان الاراک یقین کنید که شما در دل من چیکار کسید جا دارید که اینجا سکان النعمان الاراک با حمزه صدا زده با چی 164 المنادا ثلاثه انواع مفرد مضاف و شبيه بالمضاف منادا بر سنو است یک مفرد دو مضاف سه شبه شبه مضاف فائده المراد بالمنادى المفرد ما ليس بمضاف ولا مشبهه به فیدخل فيه المثنى والجمع منظور از مفرد اینجا اون مفردی ای نیست که در مقابلش تثنیه و جمع قرار میگیره بلکه منظور از مفرد اینجا یعنی مضاف نباشد و شبه مضاف نباشد مسن و جمع باشه مشکلی نداره جزء مفرد حساب میشه میگه منظور از منادا مفرد آن است که مضاف و شبه مضاف نشه در نتیجه مصنع و جمع جزء مفرد قرار می گیرند اگر مضاف و شبه مضاف نباشند و اما الشبیه بالمضاف هو كل اسم تعلق به شيء من تمام معنا، على غير جهه الصله او الاضافه و هذا التعلق قد يكون بالعمل في الفائل نحو يا حسنا وجهه او في المفعول نحو یا محرزا مجدا او فی المجرور نحو یا راغبا فی العلمی او بالعطف نحو یا ثلاثت و ثلاثین رجولا حالا توضیح میده خودش گرچه قبلن هم توضیح داده بود میگه اما شبه مضاف هر اسمی است که تعلق دارد به او چیزی که معنا رو تمام میکنه البته سله و اضافه نباشد از جهت سله و از جهت اضافه نباشد این تعلق یعنی این کلمه به ما بعدش تعلق داره میگه این تعلق یا عمل کردن در فائل است مانند یا حسن وجه که اینجا حسن شبه به مضافه چرا؟ چون وجه فائل شه چون و... چیه؟ پس تعلق داشت به ما بعدش یا عمل کردن در مفول مانند یا محرزن مجدن که اینجا محرزن عمل میکنه در مجدن و مجدن مفعول بهیش هست یا مجرور عمل کردن در مجرور مانند یا راغبا في که اینجا في متعلق به راغبا هست یا به وسیله عطف مانند یا ثلاثه و 30 رجلا که اینجا ثلاثه عطف به وسیله واو عطف 30 بهش داده شده است ما بعدش بهش عطف داده شده است 165 المناد المفرد اذا كان ناکرتن غیر مقصوده او ناکرتن مقصوده او ناکرتن مقصوده، موصوفه، نصب لفظن حالا اعراب منادای مفرد میخواد توضیح بده که چه اعرابی میگه؟ میگه زمانی که نکره غیر مقصوده باشه زمانی که منادای مفردی باشه؟ یا نکره مقصوده باشه ولی وصفی برش آمده شده باشه وصف شده باشه میگه لفظن منصوب میشه پس در این دو حالت نکره مفرد منادای مفرد مناداه مفرد در این دو حالت یعنی نکره غیر مقصوده یا نکره مقصوده موصوفه در این دو حالت لفظا منصوب میشه لفظا چی میشه مانند یا رجولان که اینجا رجولان منادای مفرد هست در نتیجه و نکره غیر مقصوده است منصوب هست یا مؤمنین اینجا هم مؤمنین نک منادای ما نکره غیر مقصوده است منصوب هست لفظا علامت نصبش یا هست چون مصنها زمانی که منصوب چی جمع یا مؤمنینه زمانی که جمع منسوب بشه چی میگیره یا یا مؤمنه یعنی فرقی نمی کنه یا مصنح هم همجوری با یا منسوب میشه یا رجلن آلمان اینجا رجلن نکره مقصوده است ولی از اون جایی که براش صفت اومده است آلمان وصف شده است پس لفظا چه شده است منسوب شده است و اذا کان علما او نکرت مقصود غیر موصوفت بنیه ما کان یرفو بهی قبل النداء اما زمانی که منادای مفرد ما علام باشد یا نکره مقصودی باشد که وصف نشده باشد مبنی میشه بر همون علامتی که با اون علامت مرفومی شد با اون علامت می میشد؟ قبل از ندا زمانی که معرفوم شد چه می میگرفت؟ الان بر همون علامت الحمدلله یهدی کلم الله و اشلاح بالا خب میگه زمانی که علم باشد یا نکره مقصوده غیر موصوفه باشه مبلی بر علامت رف میشه مانند یا یوسف اینجا علم هست لذا مبلی بر زمه هست مبلی بر چه است؟ چون در حالت رف یوسف چی میگره؟ زمه میگره؟ پس حالا که هم منادای مفرد هست و علم هست مبنی بر زمه شده مبنی بر شده؟ یا رجلو رجل مبنی بر زمه هست چون نکره مقصوده غیر مصوف هست یا رجلانی مبنی بر الیف هست چرا؟ چون نکره مقصوده هست و وصف نشده یا رجالو مبنی بر زمه هست چرا؟ چون نکره مقصوده هست و, و, و, و, و, و وصف هم نشده مصوف نیست یا مؤمنانی مبنی بر الیف یا مؤمناتو مبنی بر زن فد تو صفاف و نکر مخصوود تو ام به نکردین مفرات دن, دن حالا که گفت نکره مخصوود میتونه و موصوف بشه الان توضیح میده که باچه چی چیزای موصوف میشه وصف میشه میگه نکره مخصووده یا با نکره مفردی و وصفف میشه. یعنی نکره مفردی صفتش قرار میگیره یا یک جمله صفتش قرار میگیره یا شبه جمله صفتش قرار میگیره مانند یا رجولن حکیمن که اینجا نکره مقصود ما که رجولن باشه با حکیمن که نکره مفرد هست وصف شده یا ملکان یحب العلماء اینجا هم که نکره مقصود ما ملکان هست منادا هست به وسیله جمله وصف شده یحب العلماء صفت ملکان هست صفت چه هست یا تلمیزان فیل المدرسه اینجا هم که منادی ما نکره مقصوده هست که تلمیزان باشه با شبه جمله وسیع شده که فیل مدرسه باشه یعنی جارو ماجور جارو ماجور شبه جمله است دو اگر نودیا مکان مبنیان قبل النداء نحو یا هذا قدر الضم على الحرف الأخير لشتغالی به حرکت البناء می‌گه اگر یه کلمهی زده شد و قبل از ندا خودش مبنی بود آ، اینجا ما چیکار میکنیم؟ چون اینجا یک نقطه رو قبلا توضیح داد گفته بود نکره مقصوده مبنی بر علامت رخ میشه مبنی بر علامت چی میشه؟ حالا این خودش مبنی هست قبل از قبل از اینکه منادا قرار بگیره قبل از منادا قرار رفتم خودش چیه؟ میگه اینجا این زمه تقدیریه اون زمه چیه؟ میگه زمانی که ندا زده شد کلمهی که مبنی بود قبل از ندا خودش قبل از ندا چی بود؟ مانند یا حاظا که اینجا حاظا منادا ماهه و حاظا ذا اسم اشاره هست و قبلا هم خودش چی بوده؟ مبنی بوده میگه اینجا زمه بر حرف آخرش مقدر میشه چی میشه؟ چرا مقدر میشه؟ چون ذا مبنی بر سکونه مبنی بر چیه؟ لذا حرکت مبنی بودنش که ساکن بوده جا رو اشغال کرده جا چکار کرده؟ ما نمیتونیم زمه بیاریم لذا در نتیجه زمه تقدیریه زمه چیه؟ 166 اذا کان المناده مضافاً او شبیحاً بهی نصیبه لخبر اما زمانی که منادای ما مضاف و زمانی که منادای ایمان مفرد باشه اعرابشو توضیح دار دو حالت داشت اما زمانی که ما مضاف یا شبه مضاف باشه اینجا لفظا منصوب بشه ماننده یا مسباح العلمی از اون جایی که مسباح مضافه پس لفظا منصوبه میگیم مسباح منادای مضاف منصوب علامت من تناسف فتحه یا جمیلا فی له هم شبه مضافه چون فعل فائلشه لازم میگیم جمیلا منادای شبه مضاف منسوب لامتن اسبش فتی. صد و شش صحت اگر ارید نداو المقرونی به ال زمانی که خاصه شد ندا کردن کلمهایی که الف لام داشت. اوتی قبله او به به میگه قبلش کلمه ایو آورده میشه قبلش چی بود آورده بشه؟ اوتی قبله او به ایو ملحقه ها تنبیه بها. و الحاق میشه لی او به ایو یعنی های تنبیه. مانند یا ایو الطالب از اونجایی که منادای ما الطالب ال لام داره مقرون به الف لام هست ایو آورده شده است قبلش و های تنبیه هم بهش جسبیده متوجه شده اینو اینجا چی میگیم میگیم یا حرف ندا ایو منادای ما مبی بر خاک ها که حرف تنبیه و تابعش هست اتبع هست و يتوصل أيضا لإداندائي باسم الإشارة القريب و يا أي رميارين بحرف تنبيهها يا اسم إشارة قريب هذا رميارين اسم إشارة قريبة ميارين يا هذا الرجل يا هذا الرجل فوائد ایو طبقه بلفظ الافراد مع الجميع الا مع المؤنث فانو یاغلبو فيها التانیف میگه کلمه ایو کلمه چی؟ ایو <تصفيق> مفرد باقی میمونه مفرد چی میشه؟ مثلا اگر ما اون اسمی رو کننداش میزنیم جمع بود مثل ایو یا ایو هل مؤمنون یا ایو هل مسلمون میگه ایو سر جاش مفرد میمونه با تمام یعنی چه مسننا باشه باله ایو مفرد میمونه مگر اینکه اون کلمهی ای که ما نداشت میزنیم و الفلام داره موننس باشه که اینجا روش تا میاد دیگه نمیگیم ایوها ایوها ایو الام مثلا بینوان دبونه دیگه اینجا تابش میدیم ایتو هل ام ایتو هل نمیگیم ایوها المرعتو میگیم یا ايته هل مراتو ميجي ايو طابق قابل مع الجميع ايو باقي بمنه بلفظ مفرد با تمام ما با مؤنث فانه يغلب فيها التانيث كده حاله مؤنث ميجي طاء التانيث يغلب فيها بشه تانيس بيادروي ايو معنان ده اياتها الام و ايوها الام وهي نكرة مقصيدة تبنى كسائر النكرات المعينة وتكون في محل ناس بفعل النداء المحضوح وجوبا نقول ان كلمة ايو و اياتها فارقنا ميكون ايو و اياتو نقول ان از انجايك نكرة مقصودة مبنى مشي معنان ده بقية نكرة معين ومحلن البته منسوبة كون مناضاء جو سياه منصوباته فخودش محلن منصوب است بخاطر فعل الندای که حس شده است اما تابعها فیرفع على كونی اطف بيان اذا كان جامدا نحو يا ايها الرجل ونعتا اذا كان مشتقا نحو يا ايها العالم خوب ما اينجا مثل يا ايها الرجل يا ايها الطالب يا ايها میگه اینجا از طالب چه اعرابی داده میشه چون ایو منادای ماه دیگه منادای ما اینجا چیه میگه اگر این کلمه جامد بود عطف بیان هست و مرفو میشه اگر مشتق بود اون موقع نعت هست و اعرابشو میگیره و اعرابشو مرفو مرفو میشه میگه اما تابع ایو مرفو میشه به خاطرش به خاطر این که عطف بیان هست زمانی که جامد باشه مانند یا ایوها رجل که رجل جامده پس اینجا عطف بیان هست رجل رجل چه مرفو هست و نعتن اضاکان مشتقن و نعت قرار میگیره زمانی که مشتق باشه مانند یا ایوها العالمو یا ایوها الطالبو هم نعتس يا ايها الطالب جاز نعتس دو اسم الجلاله ينادى بدون واسطه فتقول يا الله ولا ينادى الا بيا تكريما له لانه ام الباب ميجي اسم جلاله الله بدون واسطه بايا صدا زده میشه دیگه نمیگیم يا ايها الله بلکه میگیم يا الله اون هم فقط با حرف یا ندازده میشه با حرف چی؟ یا ندازده میشه به خاطر تکریم و حرف یا هم ام الباب هست و یجوز حفف ها فیعوض و ها به میمه میگه جائز است این حرف یا الله یا رو حذف کنیم و در عوضش در آخر میم مشدده مفتوحه بیاوریم ويجوز حذفها يعني حذف يا فيعوض منها بالميم مشددة مفتوح في آخره ودر عوضش ميم تشددار دار فتحه در آخرش بياري مننده اللهم وهو كثير الاستعمال وانهم جاي استعمالهش خيل زياده ويمتن دخول هيذا اذا دخول يا عليه فلا يقال ميجي ولي زماني كي ما در آخرش ميم مشدد واوردين ديگه درين صورت يا در ابتداش ممنوع بشه يا در ابتداش ميشه نميتون بگيم يا اللهم بذ بگیم اللهم بگیم س اذا كان المقرون باللام جامدا يجوز اجتماع ايها وإسم الإشارة معا میگه زمانی که اون کلمه‌ای که لام داشت ما می‌خواستیم نداش بکونیم جامد بود اون کلمه‌ای که لام داشت جامد بود می‌خواستیم نداش کنین ایوها رو روش هم بیاریم یا رو هم میگه جائز است که ایو. هم ایوها رو بیاریم هم نه هم اسم اشاره رو چون قبلا گفته بود که ما یا ایوها رو میاریم یا, یا اسم اشاره میاریم الان داره میگه. میگه اگر اونی که مقرون به الفلامه اون کلمه که الفلام داره ما نداشت کردیم جامد بود اگر جامد بود جائز است هم ایوها رو بیاری هم اسم اشاره رو مانند یا ایوها ذا الرجل خب اینجا مناده ما دیگه در اصل هست مناده ما چه هست؟ وضع چه هست؟ تابع هست وضع چه هست؟ فيکونو اسم الاشاره تابعا لأیو والمقرون المقرون تابع تابعا لاسم الاشاره اینجا ما دوتا داری؟ داریم؟ قبلا مثلا ما در یا ایوها طالب یک تابع داریم طالب تابع هست ولی اینجا دوتا تابع داریم ذا تابع ایو هست و الرجل هم تابع ذا هست یا ایوها ذر رجلو صد و شصت هشت این المضاف الى یا المتكلم میگه اون منادایی که مضاف به یا هست إذا كان صحيح الآخر يجوز فيه خمسة أو جهاد. أجر صحيح الآخر بود مناديك المضاف بياي متكلم حاس. أجر صحيح الآخر بود درش خمس واج جائزاس. درش تاند واجه جائزاس. الأول حالة أبل وهذا هو الأكثر في إن بيشتري حالته حاس حذوياي المتكلم والإشداز أو أنها بالكسرة. إنسك ما یا متکلم و کنیم و به جاش در آخرش کسرش بدیم در آخرش چیش بدیم؟ مانند یا عبدی به جای یا عبدی یا متکلم و کنیم و آخرش رو چی بدیم؟ و به کسره اکتفا و به جای آن چون این کسره دیگه بیانگرش بشه پس یا عبدی ببین، میگه زمانی که منادا مضافه به یای متکلم بود منادا مضافه به چی بود؟ yeah. اگر صحیح الاخر بود، پنج تا حالت داره حالت اولش که این بیشترین حالتش از این است که یای متکلمه چکار کنیم حس کنیم مانند یا عبدی که یا روحس کنیم بگیم یا عبدی اثانی اثبات و ساکنتن و مفتوحتن حالت دومه که ما یای متکلمه سر جاش بگذاریم یا ساکنش کنیم یا بگیم یا ابدیو یا عبدیه یا ابدیو یا عبدیه افلیف قلبها علیفا بعد قلب کسرتی فتحتا حالت ثومی نکس ما یای متکلم و تبدیل به علیف کنیم بعد از اینکه که کسر رو هم تبدیل به فتح کنیم مانند یا عبداء که اینجا یای ما تبدیل به چه شده؟ به علیف و کسر دال هم تبدیل به فتح الرابع حفظ الالف و ابقاء الفتح حالت چارم اینه که ما الفو رو کنیم و فتحه سر جای سردال بگذاریم یا عبدا الفو چیکار کنیم؟ حسف کنیم بگیم یا عبده یا الخامس اما حالت پنجمش اثباتها و بعدوها الیفون حالت پنجم اینه که ما یارو رو ثابت بگذاریم اما بعدش یک چی بیاریم؟ مناد يا ابديا فصيره خمس حالات قلنا ان المضاف بي اي المتكلمين سيل الاخر ضع يعني ان حرفش مثل عبد حرف ال لا باش اما إذا كان المنادى معتل الاخر معتل الاخر فليس فيه الا وجه واحد وهو اثبات الياء مفتوحه فتقول يا مولاي يا قاضية. فراراً من اجتماع ساکنه اما زمانی که منادائی باب موتل الاخر بود میگه اینجا فقط یک خالت داره و اون این است که یار و ثابت بگذاریم و فتحش دی من یا مولایه یا بله یا قاضیه متوهش شديد. شو نع؟ر ما إحنا فتحش ندين. مجتمع الساكنة نبيش مياددة. مجتمع فاعل. جواز الوجوه الخمسة في السهل آخر مقيد بالإضافة المعنوية. فإذا كان المضاف إلى ياء المتكلم وصفاً اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة، لم يجوز فيه إلا إثبات اليا ساكنة أو مختوهت أنه يا مكرمي يا مكرم ببین اینجا یه نقطه قشنگی میگه میگه در حالت اول زمانی که منادای ما صحیح و الاخر بود و مضاف بیای متکلم بود اونجا پنج تا حالت داشت چند تا حالت داشت میگه ام میگه این در فواید یک در فایده شماره یک میگه میگه جواز الوجوب الخمستی فی صحیح الاخر میگه جایز بودن حالت های پنجگانه در صحیح آخر الاخر مقید هست به اضافه معنوی میگه زمانی این پنج تا حالت جایزان که اضافه ما اضافه معنوی باشه اضافه ما اضافه لفظی نباشه معنوی باشه اما زمانی که مضاف بیای المتکلم وصف بود اذا كان المضافه الى وصفن المضاف الى ياء المتكلم وصفا زمانی که مضاف بیای المتکلم وصف بود منظوری از وصف چه یعنی اسم فاعل بود یا اسم مفعول بود یا صفت مشبهه بود در این حالت ما نمیتونیم یا رو حذف کنیم باید یا رو ثابت بکنیم حالا چه صاخرش کنیم چه فتح ولی باید یا چه باشه ثابت باشه ماننده یا مکرمی یا بکرمی یا بکرمیه متوجه شید چرا چون اینجا منادای مضاف ما وصف هست اسم فاعل است روچیه فاعل دو کان المنادى المضاف الى یا يالمتكلم اب اوم جاز فيه ما جاز في المنادى السهیل یک مسئله دیگه رو داره بیان میکنه میگه زمانی که منادای مضافه ما منادای که مضافه بیاه متکلم هست کلمه اب یا کلمه اون بود کلمه اب یا اون بود میگه جائز است. همون چیزایی که در منادای صحیح و الاخر جائز, جائز بود اون چیزایی که در صحیح و الاخر بود اینجا هم چیه؟ اما یه چیز دیگه هم وجاز فيه زيادة عن ذلك قلب الياء تاء مكسورة و مفتوحة و أن يزاد بعد الطاعي ألفا ألف و أن يزاد بعد الطاعي ألفا فتقول يا أبتي ويا يا ويا و وقس عليه يا أمي إله فالولا يجب أن يلترمه الطاعي والياء نحن في زمانك منعادة المضافة المبيا المتكلمة كلمة أب يا بود همون حالتها بانجانيك اینجا جایز بود در اب و عم جایزه اضافه بر اونها اضافه بر اون ها جایز است که ما اینجا عبی رو یا رو تبدیل به تا کریم جایز است که یا رو تبدیل به چی کنیم؟ به جای یا عبی بگیم یا عبتی حالا فرق نمیکنه کنه چه تا رو مکسورتن و مفتوحتن چه کسرش بدیم چه؟ بطه. یعنی بگیم یا عبتی و یا ابته یا عبتی یا پس همون پنج حالتی که اونجا جایز بود در اب و عم جایزند اضافه بر اون اینجا یا رو میتونیم تبدیل به تا هم بکنیم این یک دو و همچنین بعد از تا میتونیم علف بیاریم یعنی بگیم یا تا یا عم هم همین هم جوریه یا بله در کلمه عم در کلمه چی؟ نه یا امتا یا امتا یا امتی یا امتا همون چیزی که برعب جایزه بر هم خب پس اینجا حالتای خیلی زیادی جایز میشه یا عبی یا عبی یا عبیه یا ابا یا ابه یا ابیا یا ابتی یا ابته یا ابتا پنج <سؤال> هفت حالت میشن سد و شسنو یجوز حرف ندا قبل العالمی والمضاف و ایوها میگه در شمارش سد است حصف کردن حرف ندا قبل از علم قبل از چه؟ و قبل از مضاف قبل از علم و قبل از مضاف و حسف ایوها جائز است معنی ده یوسف لما ده نقض تلوات یوسف چرا اهدوش کسی اینجا یا بوده ولی یا شده حس شده یا نصير المظلوم ارفق دی ای یا بر مظلوم رفقت نرمی داشته باش به من رحم کن خب اینجا یا هست شده منادا مضاف هست ایوها الكریم و علیه اینجا اشتباهی ترجمش کردیم جایز از حرف حرف ندا قبل از علم و قبل از مضاف و قبل از ایوها اصلاح شینا جائز است حذف حرف ندا قبل از علم قبل از مضاف و قبل از چون این واوا همشون وابا اتفند وابا چیه؟ قبل از علم مانند یا یوسفو که یا حصف شده شده یوسف و لماذا نقست الوقت قبل از مضاف مانند نسیر المظلوم ارفق بی و قبل از ایوها مانند ایوها الكریم و جد علی ای شخص بخشنده جود کن بر من که یا قبل از ای ها شده؟ حذف شده صد و هفتاد لا یجوز حصف المناده الا بعد یا فقط در شماره سد و هفتاد میگه جایز نیست خود مناده رو حصف کردن مگر بعد از یا فقط مگر بعد از چی؟ و حینای بعدها الفعل و الحرف و الجمله الاسمیه و در این صورت واقع میشه بعد از اون یعنی بعد از منادا فعل و حرف و جمله اسمیه و در این صورت واقع میشه بعد از آن فعل و حرف و دیگه جمله اسمیه پس جایز نیست حصف مناده مگر بعد از یا فقط و در این صورت واقع میشه بعد از اون یعنی بعد از حصف مناده چی چیزایی واقع میشن؟ فعل و حرف و جمله ماننده یا رحم الله من رحم یا مناده رو بعدش حذف کرده بعدا گفته رحم الله من رحم که فعل هست یا لی تنی کنتو آل یا بله خب اینجا اون منادای ما چی چیزی هست توضیحش میده در فائده يقول فائدة ويقدر يقدر كل محذوف بما يلوقو بالمقام يقول مقدر ميشه هر محذوف بان چيزي كه شاية جائقه هست فيكون التقدير در نتیجه تقدير ما اینجا چه ميشه مثلا در يا رحم الله من رحم كلمة قوم كلمة چه ميشه؟ باله يا قوم يا يا رجل هر چه هرچی که مناسب باشه هرچی که چی باشه با و من هم من یجعلو یا علی مجرد التنبیه به هاد المواقع و هو افضل من تکلیف التقریب میگه برخی از نحوی ها گفتند بابا این یا حرف تنبیه برای تنبیه کردن منادا نیست ها؟ در چونین جایگاهی و میگه این هم بهتر است این نظریه چی است؟ ما مکلف نمیشیم که یه چیزی رو مقدر کنیم و موقع ما مکلف نمیشیم که چیزی رو سدها اقتاديك وأما إذا كان تابع المنادى غير البدل أو المعطوف المجرد من آل، فإذا كان المنادى مضافة أو شبيها، به تكون توابه منسوبة كلها سواء كانت التواب مفردة أو غير مفردة. معندي يا نحو يا عبد الله الأقلى يا عبد الله صاحب يعقوب باله در شماره یک میگه میگه زمانی که تابع منادا زمانی که چی غیر بدل بود بدل نبود یا معطوف مجرد از زمانی که تابع منادا غیر بدل بود تابع منادا چی بود یا معطوف بود یا چی بود و مجرد از علی بود میگه زمانی که مناده ما مضاف یا شبه مضاف بود زمانی که خود مناداتی بود در این حالت؟ مضاف یا ببین زمانی که مناده مضاف یا شبه مضاف بود و تابع غیر بدل بود یا معتوف مجرد از البوت در این حالت میگه تابه ها همشون منصوب میشند فرقی نمیکنه اون تابه چی مفرد باشه چی؟ غیر مفرد منظور از مفرد اینجا اون مضاف شبه مضافه مفرد و غیر مفرد و جمع نیست منعاده ما در کلن چی میشه؟ مانند یا عبدالله العاقله یا عبدالله خوب اینجا منعاده ما مضافه چون عبد مضافه به؟ الله و طابع ما عاقل هست منادا ما عبدالله هست که مضافه و طابع ما العاقل هست که بدل نیست صفته صفته وق در این حالت میگه تابه ها همش منصوب میشن چه مفرد باشن چه غیره اینجا تا مفرده مفرد چون مضاف شده مضاف میبینیم که منصوب ال می بینیم که شده العاقله میبینیم که چه شده یا عبدالله صاحب یعقوب اینجا هم منادا ما مضاف است عبدالله تابع ما غیر مفرده صاحب یعقوب مضافه دیگه نه پس دیدیم که تابع ما چی شد منصوب شد پس اینو یه بار دیگه تکرار میکنم میگه زمانی که تابع منادا غیر بدل بود یا معتوفی بود که مجرد از الفلام بود و خود منادا مضاف یا شبه مضاف بود توابه ها منصوب میشن فرقی نمیکنه که اون تابع مفرد باشه یا غیر مفرد مفرد مانند مثال اول غیر مفرد مانند مثال دوم خب، المنادا د فإن كانت تابئه نعتا مضافا خاليا من أل وجب نسبه نحو يا زيد رسول السلام وإن كان نعتا مضافا مقرونا بأل أو مقرونا بها دون إذافة جاز فيها الرفع مراعاة لللف والناس مراعاة للمحل نحو يا علي الكريم أو الكريمة الأبي يا علي الفاضل يا الفاضله، ومثل النعت التوكيد وعطف البيان والمعطوف المقترن بال، فتقول يا مسلمون أجمعون وأجمعين يا قوم كلهم يا قوم أجمعون وأجمعين يا فتى أحمد وأحمد يا فتى غلام. زيدا يا سيبوه والخليلة والخليله ما لم يكن التابع هو المقصود بالنداء وهو تابع أيه مطلقا وتابع اسم لشارة الذي جوعله صلة إلى ندائه فإنه يتعين فيها الرفع كما علمتاء خب اینجا یک مسئله طولانی رو بیان کرد میگه زمانی که منادا مفرد بود اگر کان منادا مفرد فان کان تابعه نعتن و تابع چی بود نعت بود تابع چی بود مانند دو رسول السلامی پس زمانی که منادا مفرد بود مانند یا زیدو که مناده ما اینجا چیه مفرده اگر تابش نعت بود تابشی بود صفت قرار گرفته بود مضافا و مضاف بود و الفلام هم نداشت باید منصوبش کنیم باید چی کارش کنیم مانند یا زیدو رسول السلامی اینجا رسولو باید منصوب کنیم چرا؟ چون منادای ما مفرد است زیدو هست یعنی مضاف شبه مضاف نیست و نعت ما هم مضاف هست و الفلام هم ندارباد بس رسول چی باشه؟ منصوب باشه اما و اینکان نعتا مضافا مقرونا بقل اما اگر طابع نعت بود طابع چی بود؟ مضاف بود چی بود؟ و الفلام داشت و اتداشت او مقرونا بها دون اضافه يا لام داشت اما مضاف نابوت در اینجا رفع جایز به و محال ال یا علی الکریم الابی، یا علی الکریم الابی. در این حالت ما میتونیم نعتو و رو مرفو کنیم خاطر. لفظ علی که منادای ماه و میتونیم منسوبش کنیم به خاطر محل علی که منادای. چون لفظان معرفه مبنی بر لامت رفع و محلن منصوبه محلن چیه منصوبه پس اگر میگه نعت بود اون تابع و مضاف بود یا مضاف نبود مقرون به الف لام بود در این حالت دو اعراب درش جایزه یا علی الفاضل یا علی الفاضله فرقی نمی کنید، چه مضاف باشه، چه مضاف، نباشه زمانی که الیف لام داشته باشه و نعت باشه، می توانیم اعراب لفظ علی رو باش بدین؟ یا محل علی رو بش بدیم لفظش مرفوش میکنیم، اگر اعراب محلش دادیم منسوبش میکنیم و مثل نعتی، و مانند ده نعت هست، التوکید و عطف البيان و المعتوف المقترن و میگه مانان ده نعت هست، یعنی دو اعراب داره؟ توقید. عطف بیان و اون معتوفی که الفلام داره و اون معتوفی که چه داره؟ مانند اون معتوفی که الفلام داره مانند یا مسلمون اجمعون اینجا تابع ما توق... تأکید هست تابع ما چه هست؟ مسلمون منادای ما اجمعون تابعش هست که تأکید هست، توقید هست چه هست؟ اینجا هم میتونیم دو اعراب بدیم، میتونیم بگیم یا مسلمون اجمعون میتونیم بگیم یا مسلمون اجمعین و همچنین زمانی که اطفه بازم برای تأکید مثال دیگه آورده مانند یا قوم کلهم میتونیم بگیم و میتونیم بگیم یا قوم کلهم خب همچنین میتونیم در تکی در در بیان همینطور. یا فتا احمده میتونیم بگیم میتونیم بگیم یا فتا احمدو یا فتا غلام زید. میتونین زمانی که معطوف بود و الافلام داشت میتونیم بازم دو ارائه بشه. مانند یاسیبه و الخیلها میتونیم بگیم یاسیبه و الخیلها. چون گفته بود. مانند نهات میباشد تأکید و عطف و معطوفی که الافلام داره. معطوفی چه داره؟ میگه مالم یکنی تابع هو المقصود به ندا چه زمانی این دو اعرابو ما میتونیم بشه بدیم؟ زمانی که تابع خودش قصد نشده باشه در ندا خودش هدف اصلی نباشه در ندا خودش هدف اصلی در ندا مثل اونجا که ما گفتیم یا ایوها الرجلو یا ایها اینجا ان خودش هدف اصلی برای ندای ولی از اونجا که الفلام داره ایو را آوردیم اونجا فرق میکنه اونجا دو اعراب نمیتونیم بدیم میگه تا زمانی ما این دو تا اعراب رو به این جماعت هایی که نام بردیم میتونیم بدیم که مقصد از ندا نباشند مقصد از ندا کون بود و هو و ایو مطلقاً و اون تابع ایو بود تابع ایو ببین تاب در تابع ایو ما نمیتونیم دو اعراب یا ایوهر رجلو اونو معرفو می کنیمیم و تاببع اسم اشاره تابع اسم اشاره اشاره.تاببع اسم اشاره رو ما نمیتونیم دو ااراب بدیم. ما چی میگیم میگییم یا حاضر رجلو چ میگییم؟ یا حاضر جلو میگه ف اننه يتع فیمارفع تمام علمته میگه در این دو تا تاببع فقط میتونیم معرفشون کنیم یعنی تو نمیتونیم بگی یا یوهر طالبه. أي رابع محله بشويدي، فقط بعد معرفوش كله. بيجي يا أيها الطالب، يا هذا الرجل بعد. أما إذا كان تابع المنادى بدلا منه أو مجردا من ال، فحكمه حكم المنادى المستقل بنفسه. فتقول يا أبا الحسن عبد الله، يا سمعان عليو، يا زيد أخانه، كما تقول يا عبد الله. و یا علی و یا ویا و یا عبدالله و خالد و زید و بشروح. اینجا یک نقطه قشنگ دیگه ای هم بیان میکنه میگه اما زمانی که تابع منادا بدل بود تابع منادا چی بود؟ بدل بود نعت نبود توکید نبود عطف بیان نبود معطوف نبود بلکه چی بود بدل بود اینجا اینجا در این حالت پس زمانی که تابع منادا بدل بود یا معطوفی بود که الف نداشت یا معطوفی بود که الف لام نداشت میگه حکمش است حکم منادای مستقل حکمش حکم منادای ما م... یک منادای مستقل رو زمانی که روش میاریم چه حالتی داره اگر خب مفرد باشه مبلی بر علامت رفع میشه اگر مضاف باشه منصوب میشه شبر مضاف باشه مثلا منصوب میشه میگه اون حالت رو میگیره حالت منادای مستقل رو داره حالت چی رو داره اگر بدل بود مانند یا ابلحسن عبدالله اینجا عبد منادای ما هست تابع هست ولی بدل هست بدل از ابا هست خب اینجا یا ابلحسن مانند اینه که ما بگیم یا عبدالله اینجا تابع ما که عبدالله باشه حکم ایراب منادای مستقILY داره حکم چی رو داره؟ مثل اینه که ما بدل نباشه و مستق aquilo صداش بزنیم یا ابلحسن عبدالله بگیم یا عبدالله یا يا سمعان و آلي هذا يعني من أنه يقول يا عليو. يا زيد و آخانا هذا يعني أنه يقول يا أخانا يا يا عبد الله ويا عليو ويا يا يا و يا أخانا هذا يعني يا عبد الله و خالد يا زيد وبشرو بشر و هذا يجب ان يكون واضحاً فوائد إن, إن الضمت التي على آخر التابعي ليست في الصحيح علامة لرفعه فإنما متبوعه ليس معربا بل مبنيا وإنما اجتلبت لقصد المشاكلة بين التابئ ومتبوئه فالتابئ هنا منصوب بفتحة مقدرة منع ظهورها حركة المشاكلة يوجد هناك نقطة قشنقيرو بيان كرده بيان كرد الزميك در آخر تابئ هست. ماهنان ده يا أيها الرجل يا أيها الرجل میگه این زمه ای که در آخر تابع میاد طبق قول صحیح علامت رفعش نیست زیرا مطبوع مورب نیست مطبوع چی هست؟ مبلی هست مطبوع ما یا مثل این مثال خوب کجا رفت مثلا یا همین ایوهت طالبو یا ایوهت طالبو خب منادای ما اینجا مطبوع ما ایوه هست طالب تابه هست میگه تابه ما مطبوع ما اصلا مورب نیست بلکه چه هست؟ مبنی هست پس چرا زمه بهش داده میشه؟ میگه این زنبه که در آخر تابه میخواد به خواسته قصد شباهت بین تابه و مطبوع تابه میگه اینجا منصوبه ولی با فتحهی مقدر با فتحهی که این حرکت مشاکله این حرکتی که, که میخواد مت... تابه رو شبیه مطبوع کنه این حرکت مشاکله نمیگذاره ما فتحه رو بیاریم نمیگذاره ما فتحه رو بیاریم دوما توصف المنادى بابن متصل به مضاف إلى عالم جاز فيه الضم على الأصل والفتح على الإتباط تخفيفا له لكثرة وروده في الاستمال نحو لا تخف يا يوسف ابن داود يا يوسف ابن داود مجل زمانك وصشد منادى بوسيلي ابن وأن ابن متصل بود به اون چی به اون منادا و مضاف بود به علم اون ابن مضاف به چی بود به کلمه الی بود پس متى وصف المنادا بابله متصل به مضاف الى الم جاز فيه الضم على الاصل والفتح على الاتباع تخفيفا له لكثره وروده میگه زمانی که واسط شد منادا به وسیله کلمه ابن کلمه‌ای چی که به آن بود و مضاف به علمی بود هم زمه برش جایز است و هم فتحه زمه به خاطر اصلش چون ما قبلا گفتیم منادای مفرد مبینی برچه هست است و اینجا هم به خاطر یا و فتحه به خاطر ایطباق به فتحه به خاطر چی به خاطر هدف اصلی تخفیف سیاد استعمال میشه اینجا پس هم همزه مجاز میشه و هم مانن دللا تخف یا یوسف ابن داوود لا تخف یا یوسف ابن, ابن اینجا منادا ما یوسف هست وصفش ابن هست گفته بود اگر منادا به وسیله ابن وصف بشه و اون ابراهیم مضاف به با علمی باشه که داوود اینجا اسم علمه در این حالت ما میتونیم منادا رو ذمه بدیم و میتونیم فتحش بدیم میتونیم بگیم یا یوسفو یا یوسف و متالمی یقا ابن بین عالمانی وجب الضم المنادا اما اگر کلمه ابن بین دو تا علم قرار نگرفته بود اینجا بین دو تا علم قرار داشته بین یوسف و بین داوود در این حالت باید ذمه بشویدی مانند یا یوسفو ابن اخی چون اینجا اخی دیگه اسم علم نیست برادر من این اسم خاص نیست اتاید شدی؟ اینجا باید یوسفو چه بدیم؟ زمش بدیم